چند روز بعد ساعت دو بعد از ظهر مردی که لباس کاسبکاران تنش بود پیش من آمد و نامی از او در دست داشت و ما با هم به خانه در خارج شهر رفتیم با آنجا در اتاق کوچکی درهای آن با لایه پنبه میخکوب شده بود روی میز کوچکی ماشین تحریری قرار داشت مرد کار به من گفت در این خانه من هیچ کس نیست هر کارتان را تمام کردید به من که پوشت در نشستان بگویید. تا به خانه برسانمتان گفتم چه کاری باید انجام دهم گفت در و ماشین را بردارید و آنجایی که برقه برایتان گذاشتند که ماشین کنید امروز یادم نیست که آن نامه دوم چه بود شاید هم اهمیت زیادی نداشت اما از لحاظ مبارزه با شهربانی مهم بود چون عده زیادی گرفتار شده بودند لازم بود که نامه دیگری منتشر شود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 دندان روی جگر گذاشتم و خودم را گرفتم که حال تشنج روز پیش تکرار نشود. دلم میخواست برخلاف دستور او کار کنم و صبح روز بعد یک راست به مرد بروم و به او بگویم که دیگر اختیار از کف من دارد در میرود. نمیدانید وقتی دستور میداد که او را نبینم چقدر میترسیدم. او به من قوت و قدرت میبخشید. ظاهرا وقتی پیش او بودم خود را نترس قدم داد میکردم. اما حقیقت این است که او منبع قدرت من بود. موقعی که نامه را خواندم همونجا که می روی پله نشستم. به کاسبکار گفتم می توانی یک گلاس آب خوردم برای من بیاوری. گفت نه در این خانه هیچ چیز نیست. پرسیدم چرا نامه را اول به من ندادی؟ گفت آقا فرمودن وقتی می خواستی تشریف ببرید به شما بدهم. به فیل رفتم آیا پی که چه متنی بر من اثر میذارد وقتی کاری به من رجوع میکند چرا نامه را قبل از ارجاع کار نداده بود حتما دیگر میداند که چه اندازه گرفتارش شدم میدانست از فرط نامیدی ممکن است کار را خوب انجام ندهم این را دیگر میدانست خود را باخته بودم دیگر لو رفته بودم حالا او بر من تسلط دارد. زن ناشناس ناگهان خود را از آن عالم گذشته بیرون کشید. رو کرد به من که تمام مناظر را حالا به خوبی در برابر چشم می‌دیدم و گفت راستی می که آن کاسه کار که مرا به آن خانه برد که بود؟ گفتم نه. آقا رجب بود و این نخستین بار بود که من با او روبرو رو شدم. تعجب کردم و به خوف تصمیم خود سخن زن ناشناس را قطع کردم و پرسیدم آقا رجب نوکرش بله آقا رجب فراش مدرسه شما پس او از تمام روابط شما با استاد و کارهای مشترکی که داشتید اطلاع داشت و با وجود این لب تر نکرد چقدر من به او اصرار کردم شما نمی توانید تصور کنید که این چه مرد سمیم و باوفایی بود حرف و ساد برایش وحی منزل بود مریدو از جان گذشته بود حاضر بود کورکورانه تمام عوامر رفیق و رهبرش را انجام دهد ببخشید حرفتان را غلط کردم زن ناشناس به داستانش ادامه داد تصمیم گرفتم به خانه برگردم و صبح روز بعد یک راست به مدرسهش بروم و به او بگویم که چه چیز مرا وادار به این فداکاری ها میکند دیگر از بم را جذب کرده بودم بگویم که من هزاران خطر را پازرم به جان و دل بخرم. نه برای آن چیزی که او خیال می کند. دیدم دیگر ادامه این ووضع برایم موثر نیست، میخواستم تسلیم شوم. چنین به نظرم آمد که از راه خود نمیتوانم دل او را برووایم. همی که خواستم از خانه مخفی او بیرون بروم رجب گفت، خانم، چند دقیقه صبر کنید، آفرمودند این کاغذها را بسوزانید و مواظب باشید، هیچ چیز پیشتان نباشد. گفتم، هیچ چیز پیشم نیست. گفت، باز یک بار دیگر کیفتان و جیبهایتان را بگردید. گشتمو چیزی پیدا نکردم. هرانچرا که سوزادننی بود، سوزان و همین که خواستم در را باز کنم، از دور صدای چنخ درشگی آمد، آقا رجب گفت بیایید برویم به طرف دروشکه اول من می روم پس از چند دقیقه شما خارج شوید. در را محکم بکشید. خودش بسته می شود. من یک راست می به طرف خانه شما و شما با دروشگه بروید. به خانه که آمدم قوقایی برپا بود. دیدم مادرم پشت در نشسته و منتظر من است. فیضت و سلطان هم با چادر سیاه خالدارش همانجا پشت در چون باطمه زد و دارد با مادرم پچ پچ می کند این فضط سلطان همبازی مادرم بود در خانه مادرم به دنیا آمد و وقتی مادرم به خانه شوهر آمد مونس و همه کارش شد او مرا بزرگ کرده بود و چون هیچ کس را در دنیا نداشت تمام محبتی را که در قلب رعوفش انبار کرده بود سر من مصرفی کرد همین که در زلم و فضت در را باز کرد و من وارد خانه شدم. پیرزن با استراب گفت الهی شکر، الهی صد هزار مرتبه شکر مادرم نگذاشت که فزت و سلطان حرف دیگری بزند. وارد هشتی خانه ما که می شدی طرف دست راست اتاق پدرم بود. آفتاب پاییز بعد از ظهر تمام فضا را قرق نور کرده بود. از پشت پنجره انارهای سرخ و گرد گرفته میدرخشیدند. حوصمان را آب انداخته بودند. داشت باخچه رای آب میداد. پیرمرد سی سال بود که در خانه ما کار میکرد. پدرم روی صندلی راحتی در اتاقش نشسته بود و آرام سیگار میکشید. یک پیرمرد چاق و سیاه چرده که صورتش پر از چروک بود و سر تااساش، روی زمین چارزانو نشسته بود و کاغذها رو زیر و رو میکرد. از مادرم پرسیدم این کیست؟ چه میخواهد؟ مادرم گفت از نظمی آمده تمام اتاق آقا جانت را داره زیر و رو میکند. نگذاشتم که مادرم کلامش را ادامه دهد. یک راست رفتم پیش پدرم. مأمور شهربانی نگاهی به من انداخت و از جایش بلند شد و سلام کرد. مثل آدمی که از همه جا بی خبر هستم پرسیدم آقا جان چه خبر است؟ پدرم گفت میگویند چند روز پیش کاغذ اینجا آورده من که ندیدم حالا دارند می گردند. بعد از کمی تعمل گفت اینکه حرف است نمیدانم چه میخواهند بوزار بگردند مرد چاق و سرتاس رو کرد به من و از پدرم پرسید اسم خانم چیست؟ من گفتم به شما چه که اسم من را پدرم دخالت کرد و گفت بچه جان تندین نکن آقا معمور هستند او که تقصیری ندارد بهش گفتن دو حالا باید وزیفهش را انجام دهد بعد پدرم معمور آگاهی را مخاطب قرار داد و گفت دختر من است آن وقت اسم مرا گفت مرد چاق صورت بدتر کیبی داشت از قیافش پیدا بود که آدم بدی است اما مدب حرف میزد. همین طور است که میفرمایید ما چه گناهی داریم؟ فراش پست گزارش داده که نامهای به اینجا آوراند از این آدم های بیشرف زیاد هستند شاید عوضی گرفته. روی این گزارش شما مورد زن مقامات عالی قرار گرفتید در صورتی که بنده خدمتان ارادت دارم و میدانم که حضرت عالی از کسانی هستید که املاکتان را در مازندران به میل و رقبت به علا حضرت همایونی فروختید. البته صلاح مملکت را در نظر داشته اید. همه میدانند که در مازندران بهتر از مالک جز وجود نداشته باشد. شاید نام به اسم شما نبود. ممکن هم هست که خانم آن را باز کرده باشند. پرسیدم؟ چه نامی؟ کی نوشته بود؟ مرد که قیافه عبلهی داشت میخواست خودش را مهم جلوه دهد. با چشمهای قیل گرفتش به من نگاه کرد و لبخندی زد میخواست به خیال خودش مرا را امتان کند اما تیرش به سنگ خود من به او فرصت ندادم به پدرم گفتم بگذارید از همه اهل خانه بپرسد که آیا دیروز فراش پست پو فراش نامه اینجا آورده یا نه من یقین داشتم که کسی از اهل خانه ما، نه مادرم، نه و سلطان و نه دایه من و نه بابا پیرمرد که همه ایشان 20 تا 30 سال در خانه ما زندگی کرد و خانهزاد بودند و زندگی سیاسی پدرم در گذشته خبر داشتند، دیگر این درس اول را بلد بودند که در این طور موارد نباید دم زد. بعد اضافه کردم به علاوه فراش پوس هم می بگوید که نامه را به که داده است. مدک گفت: از کردم که فراش پست باید اشتباه کرد وحتما عوضی گرفته. بهداوه، خودش هم اقرار کرده که نامه را به کسی نداده از لای در به درون خانه انداخته است. آن وقت مردک که از هر جمله او ریا و درویی شنیده میشد شرحی درباره خودش گفت که از قدیم به خانواده ما ارادت داشت و دلش خون است که با این تفتیشها از پا به اذیت مردم محترم را فراهم میآورد. به خدا و خون گلوی علی از قسم میخورد که هزار بار استعفا داده اما چه بکند که دست از سرش بر نمیدارند؟ حکرت میکرد که روزی مجبور بوده است حتی خانه بردر زنش رو تفتیش کند اما او معمور است و معذور در صورتی که او خوب میدانست که بردر زنش آدم سالم است و اهل هیچ بامبونی نیست و عجیب این است که بردر زنش هم تقاضای خدمت در وزارت کشور را کرده بود رازه در درزنش هم این کارها را از چشم او می دید. از مجموع گفته های او چنین نتیجه گرفته میشد که آدم بیگناه و بیچاری است و خودش هم می که بیهوده دارد این خانه را می گردد. اما آخر یک نفر در این شهر این نامه را نوشته و باعث زحمت و بدبختی مردم شده است و جهبانی حتما آنها را پیدا خواهد کرد. ماشینی که با آن این نامه نوشته شده ماشین کانتیننتال است و الان صورت تمام این ماشین هایی که در از این چند سال اخیر وارد ایران شده در دست است و همین شب معلوم خواهد شد که این تح... ماشین تحریر کجاست میگفت و در عین حال لای کتاب ها را باز میکرد آنها را ورق میزد و بر می آخرش گفت نخیر اینجا که چیزی نیست